<قش> <تصفيق> یعنی منظور اینه که امیدی ندارن به تنبیهشون یعنی نمی ترسن آه؟ یعنی دیدی ندارن نه به قول ما به ثواب ما اینها به قول حسابش باز میکنن لایرجون نه به اقاب ما لا یرجون گرفته چی شد؟ منظور اینه یعنی هر دوش رو این طور آورده پس لا یرجونه. یکی تفسیرش یعنی لا یعملون عمل یعنی چی؟ آرزو لا یعملون هسن لقاینا یکیش هم لا یخافون از رو لقاینا یعنی از بقول ما تنبیه ما هم نمیترسن بیشترش اولو هم بطن نوع اول رو گفتن نوع دوم هم مامن باب احتمال وقتن ببینید گوش کنید. میگه چشم و امیدی ندارم با من رو در روشم یعنی چشم و امیدی ندارم با من رو در روشم یعنی مثل مومنین چشم و امیدی ندارن که با من رو در روشم من بهشون بادش کنم یا مثل بگو کفار چشم اومین ندارن با من رو در روشن میگم ما که خدا رو میبینیم که بخوام کی خدا رو دیده که ما بخوام باش بودم نمیترسیم چیم آیه هفت رو نگاه کنید انلزینه لایرجون انلزینه اسم انست دیگه خبر میخواد یا نه خبرش اولایکم این جمله حالا اولایک مبتدا معواهم النار این جمله خبر اولایک این جمله اولایک معواهم النار اگه خبر ان باشه خبر مبتدا رابطش چیه اولائک بعد معواهم نار جمله خبر اولائک از رابطش چیه و مه شد یه رابطه اسم اشاره داریم یه رابطه ضمیر به ماکان و یک سبه بلشو یعنی عز وجل و, و بما كانوا یک سر خوب نه مشکلی نداره کدامو ببینید اینو من بذارید از بیار. حالا خوب شد که الان گفتید اینو ولو يعجل این خوب نگاه کنید ولو يعجل الله للناس لورو بذاریم کنار چون میگه که اگر این طور بود یعنی هر چیزی نشده درست شد عجل فعل مزاره برای استمرار خب الله فائل لناس متعلق به عجل اش شرر اش شرر بهه درست شد یعنی اگر خدا سنتش این بود که به طور ممتد درست اجله کرد برای مردم امورات شر رو یعنی اقابشون رو خب یعنی در اقاب اینها خدا بگید عجله میکرد مهلت نمیداد. اگر سنت خدا املا و استدراج و امحال بگید نبود استعجال هم بلخیر اینو دو جور ترکیب کردن بعضی آمدن گفتن این منصوب به نزر خافزه منصوب به نظر یعنی بوده که استعجاله هم بلخیر که استعجاله هم بلخیر کاف افتاده استعجال شده منصوب منصوب به نظر با توجه به اینکه منسوب منصوب به نظر خافظ سمایه درست شد و خا... کاب افتاده باشه به عنوان منصوب به نظر خواب دیده نشده اینو ما نقل نکردیم نفذیرفتیم فقط از در معنا خواستیم شاده تا اینجاش معلوم ما آمدیم ترکیب دوم رو بیان کردیم ترکیب دوم گفتیم بوده تأجیلا مفغول مطلق برای یعجه مثل استعجاله درست شد تأجیلا تعجیلن بی افته جاش جاشت بشینه داریم دیگه مثل وزکرالله کسیرن که بوده ذکرن کسیرن ازکرو افتاده ذکرنش کسیرن مونده اینجا تعجیلن حرص شده شده مثل استعجاله داره چه بعد جایی داریم که مضاف هست شده شو مضاف های لجش نشسته بشه؟ فراغان مثل وزعلقریت لطیکون ها مثل جا عرب گو کرد و همسالی تجریمن تحت درم الانها رو اگه بوده میاه و لانها فرابان است که مضاف هست شه مضاف همین جاش بشینه مثل هست شده استعجاله بگید جاش نشسته حالا می سر استعجال میشه اگر خدا در عمل عذاب شما عجله می کرد کردنی مثل عجله کردن خود شما درست شو؟ اما عجله کردن خود اونا تو امراد خیره درست شو؟ یعنی چطور شما تو کارهای خیره به قول من رو میخوای میخوای میخوای میخوای ثواب رو میخوای زود بهت برسه غیره ولی اگر خدا میامد در اقاب شما مثله بگوید خیری که شما طلب میکنید و مصردید عجله میکن لقوزیه همه چی تموم میشد یا لغذا همه رو تموم کرد اینجا استعجال لهم بالخیر باز دو تا مطلبه استعجاله فعل متعدیه خوش میکنی چی میگم یا نه استعجاله فعله متعدیه یا باید بگیم با بالخیر با زائده الخير مفعول به استعجاله یعنی استعجال لهم الخیره استعجال مستر اضافه شده به بگو هم فایدش الخیره مفعولون به عجله میکرد خدا در عذاب اینها مثل عجله کردنی که خود اینا دارن تو کارهایه بگی سوددار براشون درست شد؟ الخیره میشد مفعولون به و باش میشه با یه زایده برا تحکید درست شد؟ این یک ترکیب ترکیب دوم اینکه نا بار زایده نگیریم چون بای زائد برای تاکیده اینجا تاکید معنا نداره درستو بیایم بگیم که استعجال مفعولش حذف شده به خاطر عمومیت بوده استعجال لهم ال امور به خیر او ال امور مفعول بوده حذف شده این بلخیر حال است برای ال امور یا متعلقه به استعجاله دو تا ترکیب این الاموره مفعول بوده اون هست شده حالا کدوم یکی بهتره که بگیم به سبب خیر باشه باید سببیت بدونیم یا بلخیر و حال این که زلحال هست شده حال باقی بمونه یه جا بیشتر نیست اونم جای جایی که آید سله باشه اینجا جاش نیست پس حالیت منتفی نیمونه اینکه که بلخیر متعلقه به چی باشه بگیر استعجال باشه یعنی استعجال هم به سبب خیره هم به سبب به قول رو کارهای خوبشون شد یعنی ما در واقع از نظر تئوری ببین موقع ترجمه این میشه اگر خدا در طول دوران دوران بشر برای مردم در کار شر و عقاب عجله میکرد عجله کردنی شتاب میکرد شتاب کردنی مثل شتاب کردن خود اونها نسبت به کارها درست شد؟ به سبب خیر به خاطر خیری که توشه اگر خدا در کار عقاب اونها عجلهی مثل عجله خود اونها تو کار بگی خیر دارن عجله میکرد تو کار سوا چیزشون چی میشد؟ لغضی یا الهی هم کار میشد یا لغذا؟ الهی هم عجله حالا عجله هم کنن عجله, عجله اگه غزیه بخونیم مجهول چون فاعل مشخص خداست دیگه فعل مجهول آوردن پس پناولین این فا اون موقع نتیجه میده پس فا خدا چی کار میکنه؟ حالا که خدا در کار شر جله نمیکنه چی کار میکنه؟ فن نظر و لذین لایر جون لغای نافی توقیان هم پس ما محلت میدیم نظر و یعنی بگید پس مهلت میدیم به کسانی که امید ندارن به لقای ما درست شد مهلت میدیم بهشون یعمهون فی طغیانهم مهلتام می میدیم مهلت میدیم که بیشتر در باطلاق بگیر غرو بَرن انما نوم لیلهم لیزدادو اسما مهلت بهشون میدیم تا بر گناهشون بی افزاین درستید یعمهون فی طغیان قد فهموم ببینید توی مورد اول توی مورد اول که ما عنوان کردیم برای شما توی مورد اول کاری اوقات ما مجبور میشیم که بحثمون رو من الان همه این که الان عنوان کردم جلسه قبل اگه مخواستم همه رو جمع بکنم بگم لذا شما گرههای های کارتون رو باید تو جلسه بعدش بعد اشکارتونید سوال کنید اون با شما با یه مطلب بهتر میتونید مطلب رو چکارش کنید؟ بشکافید چون نمیشه همه مباحث لفظی و بلاقی و همه موارد اون رو یه بگو یه عبارت ساده چکار کرد؟ آورد یعنی ما امکان این که بتونیم توی فرصت زمانی همه رو با هم بشکافیم نیست گاه یه اوقات سوال مجبور میکن آدم رو که حرف بیشتری رو بزن خب بریم سره آیه پونزده هم درسته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم عوض بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قالاللوین لا یرجون لغائنا لغائنا اعتب قرآنن اینو خوب گوش کنید غیر او بددل ها قول ما یکون لی انو او بددلهو من تلقا نفسی این اتبه او الا ما یوها علیه اینی اخافو این اسیتو ربی عذاب یومن عزیب و ازا توتلاه نمیگه و اذات طولی علیهم تطلا ببین جزاش قاله است درسته که فعلی که بعد از این میاد چون ازا هست ازا مستقبل محقق و وقوعه ولی تطلا گفته شده منباب بگیر استمرار یعنی هنگامی که به طور یقین به طور مستمر تلاوت میشه آیات بینات ماورین ها وقتی آیات بینات ما به شکل رگبار بر اینها بگی تلاوت میشه گرفتی جرسیتی میانه؟ قاله خواهند گفت تطلا آیاتونا نایب فایلش علیه متعلقه به تطلاس بیناتن بگید حال است از برای آیات نشد؟ وقتی آیات واضح و روشن ما به طور مرتب بر آنها خانده شود گرفتی چی شد؟ وقتی آیات روشن و واضح ما به طور مرتب بر اینها بگید تلاوت شود خانده شود قاله قاله چی؟ قاله لا لایرجون لغانا این لایرجون لغانا تو این آیه ببینید داره تو این سوره تکرار میشه میگن اینهایی که اعتقادی به بگید ثباب و اقاب ما ندارن لا یرجونه مزاره ها یعنی تو وجودشون این نیست فکری در رابطه با بار رو در رو با ما ندارن یعنی لا بر معاد اینها قالاللزین لا یرجون اعته ايه یعنی ایت بیار عطا یاتی فعل عملش میشه اعته درست شد اعته با وا که میاد میشه چی اعته یعنی بیا اعته ب بی یعنی بیار اعته به قرآن غیر hazardous غیر hazardous صفت قرآن غیر از کلماتی که اضافه بشه کسب تعریف نمیکنه بهش میگن اسماع متوقعی در ابحام غیر هست مثل هست شب هست اینا به معرفم که اضافه بشن بگید کسب به تعریف نمی تو قرآن داریم عبادون امثال و کم امثال و کم صفت عباده این هازا الا بشرون مثلون صفت بشری غیر اینجا اضافه شده به هاذا، ولی کسب تعریف بگید نمیکنه. به همین دلیل صفت از برای قرآن گرفته چی میگیم یا نه؟ من الان بگم جا غیرک، جا رجل غیرک، آمد آقای غیرتو. خوشامیده بگیر, بگیر این غیرک چیه؟ نه، مبهم است. دقیقا چی میگم یا نه؟ نکرده است. پس بنابر این غیره هاذا. اینا هازا هم به کار بردن هازا مشخصه اینجا برای حالت تحقیره مثل که شما میای این جنسو میخری این جنسو میخری بعد میری به میگه آ عوضش کن اینو عوض کن. اینج میگه اینا عوض کن در واقع با این گفتن چجوریه بگی داری اونو بیاری پای اینا میگن آ اینت به قرانون غیروازا یه قران غیر این بیار یه چیز غیر از این ورجا بیار یه چی میگم یا نه؟ برگشتن گفتن چی؟ قال الَّذِينَ اللَّهَ يَرْجُونَ لِقَائِنَا اعته بیار به قرآنن غیرهازا یه قرآنی بیار این قرآن یعنی یه کتاب مقروعی بیار یه کتابی که بگی غیرهازا اعته به قرآنن غیرهازا حالا سوال اینه این قرآن اینجا معرفه است یا نکره است حالا بگدیم غیر اضافه بشه کسب تعریف نمیکنه نکره است حالا این نکره است من صفت قرار دادم برای قرآن قران رو معرفه گرفتم یا نکره گرفتم بله یعنی به جواب چی گفتم یعنی وقتی من گفتم غیر اضافه شده به هاذا نکره است کس به تعریف نمیکنه کنه متوقله در ابحامه پس قرآن رو چی گرفتم بگید نکره گرفتم یعنی کتاب مقروه کتابی آسمانی یه کتاب آسمانی غیر این بیار این کتاب آسمانی نباشه یه کتابی بگید غیر از این بردار بیار این قرآنن اینجا یعنی کتابن بگید مقروهن میشه نان الله نه قرآنن عربیان لعالکم تعلون. اونجا قرآنن یعنی کتابن من قرآن. گرفتید؟ این قرآن علم نیست، برای این قرآن، اون قرآنی که علمه و علفلام داره، علفلام داره. و ازا آتولو عليهم آیات اونا بیاناتن قال اللذین لا يرجونا لقانا ایت به قرآنن قیلهاست. گفتم یا قرآنی غیر از این وردار بیار اینو وردار ببر ما اینو نمیخوایم مثل اینکهش گفتم شما میرید یه چیزی میخواید بخرید ها می خرید خوشتون نمیاد یا چیزی میاد میگه آقا اینو عوضش کن اینو نمیخوام ها این بگی یکی دیگه بده او بدلهو بدلهو یعنی چی تبدیلش کن یعنی یا همین باشه ولی تبدیل کن تغییراتش بده یا مثلا اینو ببر یه دیگه بیار یا اصلا اینو بگو. تغییرش بده. یعنی مثلا اینو خوشم نمیاد، بگیر یکی دیگه بده یا نه، بردار عوضش کن. مثلا رنگش رو عوض کن، شکلش رو عوض کن این کالای کرد. این او برای چی اینجا؟ برای تاخییره. یعنی اگه میخوایم ما به تو ایمان بیاریم، یا این کارو بکن یا این کارو. این او برای تاخییره. یعنی مخیّر است بین اینو این نشود گرفتی چیچی گفتم چی یادن نکته ای که داشتیم تو هازا بود تو غیر بود تو او بود به معنای تخییر خب تو تطلا بود به عنوان فعل مزاره میگه مرتب شما این آیات رو بر اینها این تذکر بخونی اینا آخرش برمیگردن قاله آخرش برمیگردن میگه ما اینو نمیخواه یا اینو رو بردار ببر یکی دیگه بیار یا اصلا بعضی محتواشو چی کار کن عوض. قول. قول چیه؟ جوابه یعنی قول لبا استیناف بیانیه دیگه میگه به اینها بگو ما یکونو لی انعبدلهو من تلغای نفسی جوابی نگه بعضی بازن اینجا یکونو فعله به مسبه معنی یسلهو یعنی اینجا جایز نیست پرم یجوزو یعنی لا یجوزو لی انعبدلهو اصلا جایز نیست پرو نمیتونم. گفتن تا مس لی متعلق به است، ان اوبد لهو فائله. ولی واقعیت اینه که اینجا لی خبره با قدممهبرا کانه است کانم ناقص است ان اوبد دلهو اسمشه. ولی کانه یکی از خصوصیاتش یمبقی است، یکی از خصوصیاتش اصلست ها؟ سوره توبه دیدید ما کانل المشرکین ان و مساجد الله یعنی ما سحه ما صلح و مثل این بگید زیاده تو قرآن معناش یعنی چی؟ معناش یعنی چی؟ یعنی شایسته نیست بر من جایز نیست بر من صحیح نیست بر من بر من چی صحیح نیست؟ این که من این قرآن را عوضش کنم محتواشو تغییر بدم دقل و تصرف توش بکنم منتلغا نفسی از طرف خودم یه نکته اول تو این آیه است اونا از پیغمبر چی چی خواستن؟ چی خواستن؟ دو تا چیز آه؟ یکی یه قرآن دیگه بیار یکی محتواشو تغییر بده جواب رو داره به کدوم میده؟ به تبدیل میده اولی رو اصلا مستقود گذاشت چون اولی اصلا در توق بشر نیست ولو به باشد ما جواب نداره اون امر محاله گرفتید یعنی امر محاله چون گفته که این فی فیرهی به نمان از علی عبدنا فرطو به صورتی هیش نمیتونه بیاره اون جواب ندارد متوجهدی یا یعنی نشود. ها؟ گرفتی چی چیچی گفتم یا نه اصلا برای مورد اول پاسخ نداد متعرضش نشد چرا؟ چون پاسخش مشخصه قبلا هم گفته اصلا هیچ کسی قادر به آوردن قرآنی دیگر غیر از این قرآن کسی نمیتونه قرآن بیاره پیغمبر هم نمیتواند بیاورد برای درست اونا گفتن این قرآنو ببر یا قرآن دیگه بیا مثلا دست من نیست که اما تغییر چی؟ تغییر شد تحریف و تغییر و اینها بگه هست لزوم میگه چی میگه ما یکون صحیح نیست بر من جایز نیست بر من نمی کنم این کارو ان او من تلقای نفسی اینو تغییرش بدم از سر یعنی اینجا مشرکین رو کوبیده من آیهشو بردارم حذف کنم بگم که نه این آیه نبوده تغییر شده یا اینجا مثلا به بوت پلان بوت منات بوت لات بوت عزیزات چیزی بوده کلماتشو بگید حذف کنن ها این ممکنه ولی من این کار رو بگو نمی کن منتلغای نفسی از این منتلغای نفسی یه چیزی فهمیده میشه بازی یعنی چی؟ یعنی ممکنه تغییراتی هم تو آیات پیداشه. شد یک است نسخ اگر قائل به ها مشخص شده نه ممکنه حکمی باشد تو مراهلی بیاد امری واجب بشه در ابتدا بعد بگید وجوبش برداشته شه. اینها منطلقای نفسی بگید من منطلقای نفسی نمیتونم بکنم اما من جانب الله بگید پس اولا این که قرآن دیگه بیاریم این در طوق من نیست ازایی چی حقی رو جا به جایی میشه اما با جانب خدا میشه با جانب من گرفتی چی یا نه قید زدید آیه شیخ عبدالقاهر جورجانی خیلی جالبه توی این دلال و لعجازش میگه, میگه همه فهم عبارت به فهم قیودشه قید قید هست که عبارت رو برای ما معنا میکنه یعنی که مزاره غالموازی چرا؟ ازا آمده ام نیامده چرا؟ درست شد یا نه؟ مشخص این هازا آمده بگی میتونست بگه به قرآن غیرهی زمیر بیاره چرا هازا؟ اینا نکاته این هاست که حکمت در بیانه اعجاز در سخن، همه حرف رو تو همه الفاظ گفته دیگه بعد قول ما یکون و لی انقباد دلمو نفسی حالا چرا این آیه نشون میده که پیغمبر میتونه منتلقه نفسی تغییر بده یا نه؟ بله در طوق بشر هستش که آیات رو تغییر بده ها؟ اما میگه چرا تغییر نمیدی؟ چرا ما یکون لی؟ چرا ما یسته و یکون و یسته و یسته و یسته و چرا شایسته نیست؟ چرا سلاح نیست؟ میگه چون ان عتبه او الا مایو ها چون من تبعیت نمی کنم این استیناف بیانی ازی را من تبعیت نمی کنم مگر آنچرا که به من وحی بشه پس من تلقای نفسی نمیشه اما من جانب الله بگید نشد یا شد این ان عتبه او حصر کرده من تبعیت نمی کنم مگر وحی او الا مایو ها علیه. ما مخبول حتی راست از چه؟ حالا چرا فقط وحی دنبال میکنی و چرا به غیر از وحی عمل نمی و چرا تلقای نفس بگی تغییر نمی دی میگه چون انی اخاف و عذاب یومن عظیمه او عذاب مخبوله اخاف است زیرا من می ترسم عذاب یومن عظیمه مخالفت با خدا عذاب یوم عظیم داره عذاب معاد داره یوم النکر آورده ها بعد عظیمن رو صفت آورده خود یومن با نکره بودن عظمت رو میفهمونه عظیمن هم صفت نیست که می... یعنی روزی خواهد آمد که روزی است باور نکردنی عذاب دارد اما عذابش رو من ازش میترسم اما کیاید عذاب رو ازش بترسه؟ یه جمله معترضه گذاشته. این حسایی تو ربی آه؟ ما ربی مفهول تو این جمله معترضه است جواب این حسایی تو ربی افتاده ها به قرینه یعنی این حسایی تو ربی بگو اخاف و عذاب یومه پس اگر معصیت نکنی بگو ترس از عذاب نیست اطاعت ترس از عذاب نداره اگر انسان از معاد می ترسد همیشه دو تا محور داره دو تا دلیل از که انسان از مح... معاد و مرگ می ترسه یکی ممکن است اصلا به معادی قیامتی اعتقاد نداره دو این دنیا رو نقد می بینه و همیشه از مرگ و این که چیز دو دومیش ترس از معاد گناهه ها رو پشت سر خراب کردید اون چیزی که تو روایات هست که که تو و مد دنیا دنیاتون رو آباد کردید خرابتوم رو آخره آخرتون خراب کردی خب پس بنابراین باید هم بترسید دیگه بایدم به این طرف علاقه داشته باشید نسبت به اینی اخاف و عذاب و یومن یا نشد یا یه تمام شد استیناف بیانی هاش قولی بله الیه چهارم از متعدیه ها نائب هم داشت مصطفی اصلا بحث اوهایوهی با الا متعدی میشه اوهایویی یکی از چیزایی که باید حتما یاد بگیرید تو قرآن اینی که چه فعلی با چه حرف جری متعدی شه این کمک رو به شما میکنه که حتی فهم آیاتو مثلا تو همین جلسه ای که من داشتم درس اسمون داشتیم و غزه اینا بنی اسرائیل و غزه اینا با زاد اله بنی اسرائیل همه گفتن این غزه به معنای اوه ایناست تزمینه میگن خب چرا؟ میگن چون ببین با اله متعلید شده پس غزه به معنای او ناس یعنی و اوهی نا الابنی اسرائیل فر کتاب لطفزدن نفر عرض مرتین ولتعلن نولو من کبیر اسرائیل قل قل لو شا اللہو ما تلوتوهو علیکم ما تلوتوهو علیکم لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا اجراكم به فقد لبست فيكم امرا من قبل هي افلا تعلمون خیلی زیباشه او گفت خداوند و اذا عليهم این تتلا یعنی خونده شود بطور طور مرتب کی میخونده پیغمبر میفرماید قل لو شا الله اگه خدا خواسته بود اگه خدا میخواست یعنی خدا هم چیزی نخواسته لوهه دیگه لو حرف و امتناه له یعنی جواب منتنه شده به خاطر این که فعل شرط منتنه شده میگه لو شاالله اگر خدا خواسته بود این ما تلاوته بود فعل ماضی با ما اگه جواب لبیاد نود درصد نود و پنج درصد لام نمیگیره مثبت باشه 95 پنج درصد لام میگیره منفی باشه نود پنج درصد لام نمیگیره گرفتی چی میگم یا نه اونجا هم نگرفته نگفته لما تلا اما اگه مثبت باشه بکیر مشخص لام میگیره مثل لوشاعل حدا کن ما تلوتوهو تلوتوهو ها به چی میخوره؟ قرآن ما تلوتوهو علیکم یا بیکار نبودم که اگر خدا فرمان نداده بود اگر خدا نخواسته بود من هیچ وقت قرآن بر شما نمیخوندم تلاوت نمی کردم ما تلوتوهو علیکم علیکم متعلق بودم شد؟ یعنی اگر قرآن هم میخوانم فرمان خداست برای هدایت شما گرفتی چی شد؟ این شاعت اگر فعل شرط بشه شاعت ارادر یا ما رادفه ها هر چیزی که مترادفش باشه درست؟ مفعولش هست میشه از موارد ایجازه مفعولش هست میشه و به قرینه جواب مفعولش فهمیده میشه چی گفتم؟ به قرینه جواب مفعول اینم به خاطر اینه که مبهم میشه مبهم میشه شوق ایجاد بکنه بعد شنیدن جزاش ما هم تو پاسی میگه وابای میگه اگه میخواستم میزدمش این یعنی چی؟ یعنی اگه میخواستم زدنش را بگید میذدمش. اگه میخواستم میخریدم. آه؟ یعنی اگه میخواستم خریدنش را بگید میخوردم. محول میاد. اینجا اینطوری بوده. لوشا الله ادم تلاوتیه علیکم بگید ما تلاوتو تو. اگه میخواستم نخونم خدا قرآن رو بر شما من اصلا نمیخوندم نه قرآن به من میداد و من میخوندم قرآنی کار نبود خواستو خداست پس خدا خواسته منم میخونم شد؟ شد یا نه؟ هر موقع فعل شرط هر چیزی که مترادفه این هاست هزم. مفعولشون هست میشه درست شد؟ و به جواب فهمیدیم شرط اینکه غیر کوچولو داره به شرط اینکه عادی باشه مقبولشون یعنی از شرایط عادی باشه که 95 درصد در نسبت میاد ولا ادراکم بهی ولا ادراکم بهی ولا ادراکم عط بجای ما تعلق لا تاکید نفی ما رو میکنه ادرا یعنی اخبره کم مفعولشه بهی بگید رو. اخبره فایلش به کی میخوره لا ادراکم به خدا میگه اگه خدا میخواست نه من قرآن بر شما میخوندم و نه خودش شما رو بگو به قرآن با خبر میکرد ها؟ من به فرمان او میخونم اگه میخواست نه من میخوندم ها؟ و نه خودش به شما بگو خبر میده و ادراکم ادرا فایلش خداستا ادرا یدری ادرا ان. یعنی اخبرن ولا ادرا کن به بعد اینو خوندم ولا ادرا کن گفتم جواب لو اگر مثبت باشه با چی میاد لا خوندم ولا ادرا کن به نگرفتی چی شده ولا ادرا کن به. مترجمش چی میشه ای گفتید؟ ولا ادراکن بهید الا ادرا, بهی؟ ادرا مازی مثبت بالا اومده ادرا یعنی اخبرا لا اخبرا کن خود شما رو باخبر میکرد یعنی به توسط تر... اینکه به خودتون وحی میکرد یا بگی کس دیگری رو معمور میکرد ها من معمور خدام خدا نخواسته بود من اصلا بگید کاری به کار شما نداشتم مشخص است و خودش شما رو با خبه بیگر و به یعنی لعدراکو بهی وحی، او به رسول قیم یا به واسطه رسول دیگری یا به واسطه و خود شما رو باخبر خبه یعنی من صفت تا صد حرکات و سکناتم بگید وابسته خواسته خداست ولا ادراکم بگی این فاقش میگه بهش میگه فای تحلیل ها یعنی زیرا اقلا دارید زیرا فقط لبست تو فیکم امورن من قبلهی یعنی من قبل قرآن من بین شما چهر سال امورن یعنی مدتا من از زمان من بین شما شهل سال زندگی کردم اومدم بهتون قرآن بخونم اومدم بهتون بگم من پیغمبرم چطور شد من؟ پس الان یه اتفاقی افتاده من یه اون بین شما زندگی کردم از این حرفا از من شلیدی گرفته چی شد یا نه؟ فقط لبستو تو یعنی باقی موندم فی در بین شما متعلق به لباس توس، عمرن زرفه یعنی مدت عمرن درست شد؟ یا مقدار عمرن، عمر، حیات، حیات بشری، مقدار زندگی رو، مدت زندگی رو، مدت حیاتی که چه سال میشه من بین شما بودن، چی از این خبرانه بود؟ من قبل هی، من قبل هی متعلق به لباس من این قبلهی ها به قرآن یعنی قبل از وحی قرآن قبل از ایهای قرآن به من من چهره سال بین شما زندگی کردم شما از این حفاظ من دیدید بعد میگه افلا تحقیلون حمزه استفامه توبیخیه آه آخه چرا این فاشفای نتیجه است بنابراین علا تحقیلون چرا فکر نمیکنید کش نه؟ چرا نیمی فهمید؟ اونها رو نسبت به عدم تحقل داره چه کار میکنه بگی؟ توبیخشون میکنه استفام امکاری نیست دار استفام منباب توبیخه اونها رو بده توبیخ میکنه به خاطر عدم بگید تحقلشون ها چه فکر نمیکنی؟ خب کنید یه اون بین شما زندگی کردم یک بار هم از این حرفا بگید نزدم الان آمدم دارم میگم خود جای فکر داره مصرم هستم بر این حرف خودم سودی هم نمیبرم این عجریه لا الله. لا از الکمالی عجرا خب کار بدون مست که دارم میکنم توهین و جراحت از شما هم دارم میبرم تمام زندگی خودم و ثروت خدیجه رو هم که به امری عمل رو دارم در این راه بگیر میدم از همه هم بیشتر بگید دارم مثل این نیستش که به دیگران بگم این کارو بکنید خودم نکنم اگه به دیگران بگم نماز بخوانید بر خودم نماز هم مستحبیاتش واجبه از همه شما هم جلوتر دارم میام بین شما هم چه سال زندگی کردم همتونم منو به همین بودن میشناسید هیچو از این حرفام نزدم بودم. آیا اینا دلیل نمیشه که شما بشین یه لحظه فکر کنید پس معلوم میشه همه مشکلات اونها این بوده که بگید نمیشه داده ها رو بذارن کنار هم دیگه دادش بگید فکر کنن فکر میکردن به نتیجه میگه سیدم افلا تحقیلون نتیجه هست همزه همزه استفامه توبیخیه لا تحقیلون به خاطر عدم تحقیلشون اونها رو داره توبیخه نه نه یکیش برش منکی میشه یکیش برش مثبت. اون ولا ادراکم یعنی و ما ادراکن یعنی اگه خدا نمیخواست من نمیخوندم و اصلا خدا قرآن رو نمیرساد و ما ادراک بگیر از با خبرتون نمیکن. خدا قصد کرده شما رو با خبر کنه به من هم فرمان داده من به شما بگید میخوانم این آیه میشه ولا ادراکم دوکیش میشه من قرآ بر شما میخونم خوم خدا بهم ام کرده. اگر خدا به من امن نکرده بود تلاوت رو ممکن بود خودش خبر بهتون بده حالا یا به واسطه بگی به قائد لطف یا به واسطه به شما یا به واسطه های دیگه یا به واسطه رسولی غیر من ولی فعلا من هستم گل سرسود خلقت که به هم برشون البته الله قراعت عفسه هست و قراعت بالت فمن میگه حالا که شما به کار نمیدسید بعدم نمیخوایدم بفهمید بنابراین با با این نتیجه تفریل سببیت تعلیم یعنی بنابراین من ازلم و, من من افتر و الله افتره من ازلم و کی ظالمتره؟ تره این منمن استفامیه است برای چی بگید برای انکار من ازلم ها یعنی کی ظالم تره یعنی کسی ظالم تر نیست نگرفتی چی شد میگه کی ظالم تر از اینه آه؟ یعنی هیچ کسی از این آدم ظالم تر نیست کدوم آدم من ازلم و ممن از کسی که افترا الله کذبا به خدا دروغ ببنده آه؟ خدایی که خالقه هستیست بیاد به او دروغ ببنده کی ظالم تر از اینه آه؟ یعنی من هیچ وقت به خدا دروغ نمیبندم این قرآن از جانب خداست به منم اهم کرده بر شما تلاوت کنم میخوانم شما فکر کنید منی که امین هستم آیا قبول میکنم یه همچین چیزی رو که بیایم به خدای خودم بگید ظلم کنم و دروغ ببندم چه کسی ظالم تر است یعنی هیچ که تو عالم ظالم تر از بگید مفتری علالله نیست افترا الله کذبن این کذبن کذب مستره درست شد دو تا ترکیب بیتونه داشته باشه یکی اینکه که به باشه برای افترا یعنی افترا علالله کذبن یعنی کلامن کذبن کسی بیاد افترا ببنده به, به خدا کلامه بگید دروح. دروح. یه سخن دروغی رو به خدا نسبت بده یعنی قرآن دروغ باشه منم بیام به خدا نسبت مفعولم بده بعضی یعنی میگن کذبن مفعول مطلق به مترادفه یعنی افتراعن. افترا یعنی الله یعنی افتراع بنده به خدا خب معلومه سخنی را این کذبن یعنی افتراا گرفتید یا نه یعنی مفعول و مطلقه تأکیدی ما مفعول به گفتیم و مفعول مطلق تأکیدی قاعدتا مفعول به بهتر از مفعول مطلق چون مفعول مطلق تأکیدی اینجا ها. یعنی تاکید میکنیم که افترا بدنده جای تاکید بگید نیست جای مفعول مطلق تأکیدی نیست بلکه میگه سخنی به دروغ به خدا بگید نسبت بهش بهتر از مفعول مطلق یا افترا بنده او کذب به آیاته کذب به آیاته این کذب به به جای کجاست بگید افترا به آیاتهی متعلق به کذب است ببین الان نقش پیغمبر اینجا چیه این که از جانب خدا مأمور است در اینها قرآنی را بگید بخوانم نقش اونا چیه؟ این که این قرآن رو بشنبن بگو تنخل کنن به پیغمبر که میشه ظالم کریم علی آسوه الله فرم موقع که دروغ بگه با استدنالات سابق معلومی پیغمبر دروغ نمیدید یه اوکزبه برمیده به دو دوبومی ها درست شد؟ برمیگرده به طرف مقابل میگه ظالمترین فرد اون کسیه که به خدا دروغ بگه با استدار ثابت شد من به خدا دروغ نمیگم. و ظالمترین فرد اون کسیه که تقضی بایات رو بکنه یعنی چی میشه مفهومش بگید یعنی شما جزه ظالمترین آدم ها هستی درست شد یا نشد گرفتید یا نه بین خودشون اون دیگه او چون پیغمبر که تکذیب آیات رو نمیکنه. میگه من اگر بیام دروغ بگم دیگه از من بدتر بود زمین نیست آیا دروغ میگم با این قرارین و شواهدی که من گفتم یا اون بین شما زندیدی کردم مزد ازتون نمیخوام و غیره و غیره افلا تقلون شما من دروغ نمی کن دوبامیش بگید ظالم ترین فرد اون کسیه که تکذیب کنن هم را و شما دارید الان تکذیب و ظالم نه گرفتی چی میگم یا نه مثل این میمونه مثل این میمونه من بگم من میام سر کلاس یا کلاسی بعد میگم کی بدتر از کی ناشکرتر از اینه که درآمدی کسب کنه پولی بگیره ولی درس خوب نده یا درس خوب بده اون یکی گوش نکنه در صورت که خودش احساس کنه که بگید با قرائن درس خوبی داده یعنی اگر چیزی گرفته درس خوبی هم داده پس مخصوص قسمه دومه بین دو نفره میگه من ظالم ترین میشم موقعی که دروغ بگم به خدا شما هم ظالم ترین میشید موقعی که بگید تکذیب کنی او کذبه به آیاته بعد میگه حالا چه من چه شما اینو بدونید این مجرمون یعنی همون ظالمون ظالم و مجرم رستگار نمیشه این نهو زمیر شهنه این نهو برده زمیر شهنه که تحکیده. زیرا به یقین بار کج به منزل نمیرسد حواستون رو جمع کنید اتماع موجهد شده باشد نشد؟ نهو لای فل زالمون این مجرمون یعنی ظالمی زالم. مجرمن به کیظ کردن به خودشون به نعمتی که خدا داده پس اینها مجرمن مشخص نشد یا شد بله زمیرشان برای ضمیر زمیرشان از ادات تکیده ان نه هم برای ادات لا یفلح المجرمون الفلام المجرمون ام الافلام موصوب یعنی الی زینه یجرمون اونهایی که جرمی میکنن اینجا منظور از جرم کسانی که ظلم میکنن اینها را از کار نخواهند هیچ وقت خب بریم آیه بعدی و یعبدون و یعبدون من دون الله مالا یزره و لا ینفعه و یقولون هاولا ها اونا ایندالله قلعتنب اونه الله به مالا یعلم و فی السماوات و لا فیلعر صبحانه و تعالی هم ما یشت آیه قشنگیه دفت کنید دوستو نکته هم بخونتوش بکنم این وی عبدون واقش واقع استینافی هست برمی باز با بحث با مشرکی استدلال من تموم شد توی نهولای افله هلوش بمون بس ما. و وی عبدون این واقع استینافیه که اول جملات میاد به نظر میاد که وقتی میگیم واقع استینافیه یه نقشی نداره این کلام هم جدا هست کرد به نظر میاد نوعی تحکیده یعنی تو کلام نوعی بگید تحکیده انگاری اینجوری گفته یا عبدونه مشخص شد دارتون یعبدون من دون الله خب دوستو نکته ریز بگم یعنی جایی که تو ترجمه کنی این بحث دارم یعبدون فعل مزاره عبادت میکنند کی عبادت میکنه مشرکین یعبدون من دون الله این دون به معنای غیره یعنی من غیر الله من غیر الله این حال است از مفهول نه مندون منشمن بیانیه است، حال است از برای مفهول ما یعنی یعبدون ما عبادت میکنن آن چرا آن چرا که لا یزر نمیتونه اینا رو زرر بهشون بزنه زرر بزنه یعنی اغابشون کنه درست چون؟ ولای و نمیتونن بهشون سودی برسونه یعنی سوابی بهشون برسونه یعنی حرفشو گوش نکنن نمیتونه گوششون رو به ماله حرفشو گوش کنن هم نمیتونه بگید دستی به سرشون بکشه چی این بودها، این به قول خودمون مخلوقات دیگری که اینها به عنوان خدا میگیرن میگه اینا چیزایی رو دارن عبادت میکنن ما که لا یزر رو لا یزر رو این اصاو و لا هم این اطاو خب ما اگر کسی رو عبادت میکنیم در واقع از جهنمش میترسیم به بهش بشن بگیر امیدواریم ما یه اقل عبادته با قول خودم عبادت درست نیست؟ میگه اینا کسی رو عبادت میکنن که اینطوریه. اونی که عبادت میکنن اینطوریه من دون الله در حالی که من کیر الله اینا مشک بودن آه. باشه خدا رو یه جا میذاشتن. یه لحظه بیان اجازه بیه. بله بله بله بله بله سلام نهیم. الو الو سلام نهیم. بله سلام نهیم. متشکرم. الهم شو بله بفرمایید خواهش می‌کنم بله بله بله بله بله شد نخیر نخیر خوب خوب خوب نه خواهش ما امروز, امروز ساعت شیشونیم به بعد من هستم اگر ایشون 100 درصد 6 به هر ساعتی که ایشون میگه بگه من درو میام چون بهش بعد هم نکنم اشکال نداره اشکال آره به من بگید اشکال نداره اشکال نداره اشکال نداره اشکال نداره باشی باشید خداحافظ ببخشید من سر کلاس بودم خداحافظ ببخشید از شما معذرت چون این بنده خدا رو من یه بدغولی بشم از که بدغولی نکردم فراموش کردم همون فراموش کردم صبحان الله لذی یونسی ولا یمسی خدا اینم نشون بوده که یه کسی با یه جمعه داره امیر میگه عرفت الله به فسخ از و حلل اغود میگه خدا رو من شناختم فقط به فسخ لذایم یه جایی تصمیم میگیرم سفر و سفر که کار بکنیم نیمیش تصمیم هم شد شد و حل لغود یه جایی کاری بیره میزنم درست حساب میبینم باز شد حالا در حال مثلی که اون مابره خلاصه خیلی انشالله. خب ما لا یزر رو هم ولا ینفه هم درست شد پس میگه اینا در واقع هم خدا رو میپنستیدن یه درصدی خدا داشتن بقیش غیر خدا بود میگه اون قسمت غیر خداش لا یزر رو هم ولا بگیر یعنفه و یعبدون این نکته داشته باشید یعبدون یعبدون عبادت میکردن عبادت ها یعنی اونها رو شریک خدا در عبادت میکردن گرفت دیگه چی گفتم یا نه این یعبودون نکته است من دون الله من غیر الله بگید نکته است لا یذروهم نکته است لا ینفوهم نکته است بله که خودهارو عبادت می‌کردن دیگه عبادت که میکردن اونارو عباد آره می‌زاشن کنار خدا دیگه یعنی خدا رو عبادت میکردن اونا رو هم بگید عبادت میکردن، از عبادت. دختری چی میگم یعنی عبادته و یا قولن، جای یا بعد بعد هم یه هم میگفتن، هاولایه، ها هاولایه یعنی این باتا. این هاولایه ها بعد میگه به ما. بعد به ما. گرفتی چی کردم یه نه. به ما. یعنی, ما. یعنی ما یه بار به اعتبار لفظش محصول گفته یظور روم یع یعنی یه بار به اعتبار معناش اینا رو متعدد بوده ها اولاه اولاع شفعها اونا انندله شفعها جمع شفیه شبیه یعنی جفت همراه اینا همراهان ما هستند انله پیش خدا انندله متعلق شفع ها یعنی اینا کار ما را رو را راه مینداند پیش خدا یعنی ما اینا رو عبادت میکنیم و اینها رو بگیر پیش خدا داریم اینا کار ما رو پیش خدا درست میکنن نشد یا شد ها ها هاولا شفاها اونا مبتده خبر الله دو نکته دارم اینجا بعضی ای ها اومدن بعضی ها مثل مثلا حالا نام هم ببریم مشکلی نداریم مثل تفسیر هاولا شفاها اونا خبر بوسه شینزا هم بعضی ها مثل تفسیر آلوسی مثل تفسیر مراغی بعضی از این تفسیری که بعضا میخوان این ها اومدن تو این آیه یا مشابه این های عنوان میکنن به بعضی از مثلا فرض کنید که شیعیان که متوسل میشن متوسل میشن نوعی این رو به قول معروف تطبیقی میکنن نصوری که این قلطه این قلطه اولا ما هیچ کسی از شیعهان در طول تاریخ نیازم شیعه اقالی رو کاری نداریم آه. شیعه اقالی مثل سنی ناسبیست یا مثل کسانی دیگر ایست که اون هر دوشون مرخص هم یعنی من چیز نیستن همونطور که فهم بد کار رو چیم. اولا هیچ کسی عبادت نمیکنه. ما حتی پیغمبر رو هم عبادت بدیدن عبادت مال خداست هیچ کسی همچین کار نماید اینا یعبدون دوم دوم دو اینها ها بوت هند لای ازرل و, لا و در صورتی که اونی که ما داریم بهشون بعضن توسل میکنیم و اونها رو واسطه قرار میدیم همونطور که خود و قرآن خدا رو واسطه قرار میدیم و در واقع واسطه قرار دادن اینه که خدای ما بیا به ما خطاکاری، ما گناهکاریم ما رومون زیاره این قرآن تو رو گرفتین تو دستمون تو به این قرآنت لعقل نگاه کن به ما لطف کن این کجاش عبادته کجاش به قول خودمون بگو ورد دارد که ما کسی رو در کنار خدا قرار دادیم این بنده خالق خدایت تعالی، این خالقی که تو هستی میگی مخلوقی بالاتر از این نیست کانقا بقا حسین و, و عدنا ما به این مخلوق تو که مخلوق اعلای توست گل سرسبد خلقتت تو رو قسمت میدیم به این اینو رو بگم رو بابردیم دم درگاه تو وبدبو علیه وسیله، این وسیله رو آوردیم از تو میخواییم ما رو نبینی لیاقت اینو ببینی ما خودمون رو به این چسبوندیم به لیاقت این به ما نگاه کن چیزی نداره که ما با عنوان بقول معروف ها و عله اگر کسی وائل بزات ببیند هر کسی رو در کنار خدا یعنی او رو صاحب نفع و ضرر ببیند آه؟ این میشه چی بگو؟ شر من از دور از مساله است بحث بعدی اینه بحث بعدی که ما داریم اینه که اولا ما اونها رو عبادت نمیکنیم ثانيا اینها بت هستند در صورتی که اونها بگید زندن پیش خدا خدا خدا تعبیری که دارد میگه ولا تاسبنا الذین قتلوا سبیل بله هم احیا بله احیا دهم معنای لفظی بله احیا و اندراب بهم یورزون بلکه اینها احیا اندراب ان بهم یورزون خب ما به حیات اینا مرده و زنده ندارن آیات قرآن هیچ جایی برای بعد بعضی آن چیز داره میکنه ب... یعنی قیاس غلطی هم میکنه عنوان میکنه که مشرکین وقتی تو چاله میفتن مشرکین وقتی تو چاله میفتن همه بطخاشون رو فراموش میکنن طبقه های قرآن همه رو بگیر فراموش میکنن بعد خدا را میخوانن دعوالله مخلصین علا چون چون تو برمیگردن به فطرتشون دیگه برمیگردن به فطرتشون میبینن تو فطرتشون یک نفر بیشتر نیست که میتونی نجاتشون بده اون خداست بقیه همه را بگید فراموشون میگه اما این طائفه عکسه. موقعی که به چاله میفتن خدا را فراموش میکنن میرن سراغه بگید امامان این غلط هست یعنی این نوعی از عدم شناخت اعتقادات بگید امامی است البته اینها به قول خودمون ممکن است ما هم خیلی از چیزها رو ندونیم و اونهایی که شناخت نسبت به اعتقادات دارند هیچ وقت چنین مطلبی رو عنوان بگید این قضیه دو تا جدا از همه اصلا هیچ کسی در بین امامیه معتقده به این نیست که ائمه معصومین پیامبر خدا بگید، اینها در کنار خدا فعالند. آقا اعتقادی می‌ندازم. اما اینکه ما قرآن رو دست بگیریم و خدا را به قرآنش قسم بدیم پیامبر رو به درگاه خداوند ببریم. پشت پیامبر در واقع من گناهکار، پشت پیامبر قایم بشم برای اینکه خداوند نظر لطفی به من داشته باشد و پیامبر ما باید بر این اعتقاد داشته باشیم پیامبر پیامبر است چه در زمان حیات خودش و چه در زمانه بگی ممات خودش آب روی پیامبر در زمان حیاتش با آب روی پیامبر در زمان مماتش که الان به ظاهر در بین مانیست برقی بگو ندارد گرفتید من چی ارز کردم یا نه میگه قل بگو قل اتونبعون الله به ما لا یعلم و فی سماوات و لا فلعص اتونبعون تونبعون یعنی تخبرون ها همزه برای توبیخ ها میگه خجالت نمیکشید دارید خبر میدید به خدا چون میگن هاولای شفعه الله خبر میدید به خدا به ما این به ما همون مالا زر رحمه. خبر میدید به خدا به چیزی که لا یعلم و فستماواته و لا فلعرز لا یعلم یعنی لا یعرف و یه یع مفعولیه چیزی رو دارید به خدا خبر میدید که خدا نمیشناستش نه در آسمان ها و نه در زمین ها یه یعنی علعرز علی فلانش علی جنسه مثل السماوات درست شد معادل همون جمعه یعنی آسمان ها و بگید زمین ها یعنی هستی جالب و میگه اومدید دارید خبر میدید به خدا چیزی رو که خدا نمیشناستش در کل هستید این یعنی چی که خدا نمیشناستش در اگر خدا علمش این ذاتشه و علمش بر همه چیز هست و همه چیز در نزده او معلومه خب پس اگر نشناست در آسمان و زمین بگید چیزی رو این دلالت میکنه و این که او بگو نیست گردید یا نه این نفی است اما نوع نف خیلیم نوع نفی یعنی نفی به شکل ایجاویست این نفی با تو با پیچ یعنی شما از یه پیچ ردشی به نفت برسی عقل انسان رو بگیر یعنی میگه خدا اینو که تو آوردی داریم میگیم شفیه خدا خدا اینو نمیشنستش نه در آسمان ها و نه در زمین این چیزایی که میگید خدا نمیشناسه خب میگه خدا نمیشناسه آه مثل که بگی فلانی اینو نمیشناسه خب میگه نمیشناسه شاید هست بعد میگه با توجه به اینکه بر میگردیم میگه علم خدا و همه چیز است پس معلوم میشه بگو ویست درست شد میگن اینو انفیو ان به ایجابه داریش شد مثل که تو قرآن در رابطه با بهشتی ها میگه لا هم تجارتون ولا لحون ذکر الله در مورد اهل بهشت لا طلحی هم تجارتون ولا لحون ان ذکر الله یعنی چی؟ یعنی اهل بهشت و تجارت و لحی از ذکر خدا بگید عافل نمیکنه آدم به ذهنش میاد که ممکنه خب اینا تو بهشت تجارت و لح دارن اما از ذکر خدا لح نمیشن. بعد که بر میگرده مراجعه میکنه به بهشت میبینه که اونجا الله غیلن سلامن سلام تهییت هم فیها سلام آخر و دعوا هم عالمین ال اونجا اصلا تجارت و لحب نیست معنا نداره بس میگه ها یه اصلا از بیخ زده یعنی تجارت و لحبی نیست که اینها ها مشکولش بشن از ذکره داره نه اینکه تجارت و لحب داشته باشن بلی از بگو. قفلتش در امان باشه گرفتی چی از کردم یا نه؟ میگه به اون الله به ما لا یعلم و فس سماوات و بعد میگه صبحانه و تعالی یعنی صبح صبحانه و تعالی مخلول و مطلق جای خیلی هست تعالی آمد جای صبحانه و چون صبحانه و جمعه فعیبی هست من گفتم صبح الله و صبحانه دارست شو؟ سبحانه الله وتصبيحا و تعالا یعنی تعالالله اما یشرکون این اما یشرکون ماش میتونه مایه بگید موصوله باشه یعنی ان اللذی یشرکونه یعنی از این بت ها میتونه بگید ماش مایه مصدریه باشه یعنی ان اشراکه خدا منظه است از شریک گرفتن های اینها از عمل اینها یا خدا منزه است از بت‌ها اینها ها بهتره شاریک گرفتن آه. خدا بلند مرتبه تر است از فعل قبیح اینها کار غلط اینها بگید ها خدا بلند مرتبه تر است این چیز واسه ماش ما مصدریه باشه درست شد ان ها حالا این ما با واوستی با چی؟ اتخبرون الله آیا خبر میدید به خدا به چیزی یعنی به بودهایی که خدا نمیشناسد شون چیزهایی آوردید بگید،, بگید،, بگید اینا شفیه خدا خدا اینا رو نمیشناسه. یعنی شفیانی رو برا خدا قرار دادید که خدا نمیشناسد شون. یعنی چی؟ یعنی اینا شفیه؟ بگید و ما کانن ناسو وابا به استینافی هستی میگه ما کانن ناسو الا امتن واحدت این فطرته میگه مردم یه امت داشتن یعنی وقتی حضرت آدم آمد بعد نسل آدم آمدن در این مسیر اینا یه مسیر داشتن خود خدا هم گفتش که برید تو دنیا خلاصه براتون مستقر و متاه از الهی برید اونجا فیلن اونجا باشید کانن ناسو و ما كان ناسوی لا امتا با این امتا یه چیز جالبی رو نشون میده اینکه بشر الان توی چیزم ثابت شده مدنی و طبعی مدنی و طبعه. یعنی بشر از اون موجوداتیست است از طرف خداوند که مجموعه زندگی میکنه حالا ممکنه یه نفر برسد شاست سر یه کوه چه 44 50 سال زندگی کرده اینم باز از جمعیت فرار کرده رفته درست شد ولی انسان از روز اول امت بوده یعنی این امت زندگی کردن در کنار هم بودن که همون که میگه مردش آفریدیم زنش رو هم آفریدیم خدا میگه و در واقع خانواده بعد اجتماع و اجتماع بودن بگی جزء ساختارهایی که خداوند برای این نسل قرار داد ما کنن ناسو الله امتن واقع همه یه امت بودن چند امت بگید نبودن الا امتن واحد واحدتن صفت امتن حصر کرده دیگه مردم با همه را حصر کرده طبق فطرت در امت واحد خب فختلفو فختلفو یعنی چی؟ یعنی پس اختلاف کردم یعنی منافعشون با هم بگیر درگیر شد حابیل و قابیل یکیشون قول محروض قربانیش پذیرفته شد اون یکی نشد حسادت ها شیطان وسوسه درست شد اختلاف کردند. فخت تلف خب وقتی فخت تلفو شد باید چی کار بکنیم؟ بعد از اون دیگه امبیه آمدند برای این که اتمامه بگید حجرت کنند مسیر رو نشون مسیرهای انحرافی رو ببندن فخ تلف و لولا کلمتون حالا اینجا و لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه اختلفت اینها طبق قاعده ای که خداوند در وجودشون فطرت قرار داده بود و اینها بر یک امت بودن داشتن حرکت میکردند وقتی که به خاکی زدن خدا با چکارشون میکرد و گوشمالیشون میداد همون ولو یا عجه وقتی به خاکی زدن و گوشمالیشون میداد تختلفون اما خدا من سنتش بر این نیست میگه ولولا این لولا لولای امتنایی است یعنی لولا کلمتون سبقت من رب بکر موجودتون این کلمتون یعنی سنتون اگر سنتی نبود که خدا سبحا این سنت رو بر خودش واجب کرده من رب بکند اگر سنت الهی نبود لا قضیه بینهم خدا کار رو تموم میکرد کار تموم میشد بین اینها فی ما فیه اختلافون در آنچه که درش اختلاف میکنه یعنی جایی که اختلاف میکردن هرکی از, خا... از جاده رفته بیرون به خاکی خدا کارشو میسار ولی خداقن چنین نکرد سنت خدا بر این نیست شد یا نشود؟ یعنی سنت خدا بر مهلت شما که منحرف شدید به طرف بودها در واقع رفتید تو جاده خاکی خب چرا خدا نزد گردن تونو؟ چون سنت خدا بر این که بگید اتمام موجت کنه املای کنه استدراج کنه والله همینجا به قول معروف سر کل خر بگیری یک کیکی به روت میگه و لولا کلمتون سبقت من ربک آها من ربک متعلقه به سبقت. سبقت صفت کلمتون. این لولا ی امتنایی است دیگه خبرش حاجبول حذف یعنی لولا کلمتون سبقت من ربک موجوده تو اگر نبود لقوزی بینه نهم. یعنی خدا قضا میکرد یه مجموع اومده چون فایل معلومه لقوزی بینه هم. هم یعنی چی؟ بین اونایی که تو جاده موندن و اونایی که از جاده زدن بگید بیرون اونایی که به خاکی رفتن همین یعبدونم مالا یعبدونم اندون الله مالایی از اولو هم خدا قضاوت میکرد کارو رو تموم میکرد بین اینها. فی ما در آن چه که فیه یختلفون، فیه متعلق به یختلفون مقدم شده برای خاطر سجعه هایی. درست شد؟ لقوز یا بین هم فی ما فیه یختلفون. این فیه متعلق به یختلفونه یعنی اون چی که اینا اختلاف میکنن، یعنی سنت ادامه داره. خوب هست، بد هست. خدا باید همه ات بداشون بگیر. هر که اجاد نمیزد بینون، اطماع موجب تو همین دنیا ترتیبه رو بگی اما نکرده خدا فیما متعلق به گذیه است بینه هم هم متعلق به گذیه است قضیه یه حوضت توش نایفایلشه. آه به قرینه اون قبل که داشتیم لگوزیه کجا بود علیه الیه خود؟ آه داشتیم لقوزیه بله آیه یازده که ولو یا الله الناس اش شره استعجاله هم بالخیله اینجا لقوزیه عجله هم لقوزیه عجله هم بینهم هم خدای بگی یا زیال عذاب و زمیر و به عجل مخوره که در قبل اینو دیدیم <متصف> نشد یا شد لغوزیه بینهم این هم فی ما فی اختلاف نختلف توش مستقره برمیگرده با ما عجل ها یا برمیگرده به عذاب یا لغوزیه لعذاب و. آه عذاب خدا بر اینها ها حتمی میشد نسبت به آنچه که درش اختلاف کرده. خدایی اقشونو بگی اون یه سنته یه قاعده است درست شد درست شد الیجابو بعد نفی یا انفیو ان بعد الیجاب یا انفیو ان به ایجابه درست شد یه قاعده است که در واقع شما نفی میکنید یه چیزی رو به توهم میاد اثبات اصلش یعنی شما سالبه به انتباه محمول درست میکنی ولی وقتی بر میگردی میبینی سالبه به انتباه موضوعه میگی من مثلا بچه فلانی رو تا حالا, حالا ندیدم شما داری نفی دیدن بچهش رو میکنی ولی وقتی بر میگردی میبینی زن نگرفته زندگی تشکیل نداده، میگن هم اصلا بچه ندارد شما منظور این بوده که او بچه این ندارد که من دیده باشم سالبه به انتفای محمول بگی ولی منظور سالبه به انتفای بگی موضوعه و سلاله و و آلنه دیگی